ناچار ما خودمون نشستیم از اول تا آفرش اثر این است که حالا بالاخره دوستان میگه هستن عرضز کنم که دکتر دکترخواارچ علمیم دو بم گمبد زرد بود می خویم این امید که دوستان بعد خودشون تمام این کتاب رو بخونیم ولا اگر نشستیم که تمام مطوع اد فارسی رو من اینجا بیارم سر این کلاس با شما بخونم بل معطلی بی نشه نمیشه و الان تو ماشین میگفتن این حافظی که حالا دارن دوستان از ما بیرون میکشن که از اول غزل اول حافظ درس رویم تا اون آخرش ما خودمون سر کلاس دوری دوری اصادمون یه سال خدا رحمت چون یه سال حافظ میفرمودن یه سالم هم مصنبی میفرمودن. از دفتر چهاره توی 20 صفحه ای در طول سال بیشتر نفرمیزن با اون چه ما خوندیم خدمتشون همین بود مصنبی هم همینطور 20 صفحه از دفتر چهاره خوندیم این فقط برای راهنمایی بود برای که نشون بدن که شما ای می‌خواید کار کنین این مطالب هست یا انگوش میذاشتن روی جایی که مثلا ما نمیفهمیدیم که اینجا اشکال داریم این فرمودن که خب این چیه، اینو بگین یا اونجا چیه، فعال میکردن بلد نبودین، بعد خودتون راهنمایی این فرمودن بعد بعد اون راه باید اون راهنمون ما باقیش خودمون باید میخوندیم و امتحانم باید میدهدیم حالا اینجا که شما امتحان هم ندارید دیگه این, این مقداری که ما درس ندیم کافی هست برای اینکه خود شما بتونید همه کتاب های نظامی رو به است مثلا رفتا مشکل همه کتاب نظامی رو بتون خودتون بخونید و دیگه مربوط همت خودتونه باید مطالعه کنید یه هم اگه اشکال داشتین یاد داشتیم بعد میپرسین از اینکه مهم نیست اما بنشینین که ما اینجا همش بگیم این محصا مرکوب نیست ممکن است خب عرض کنم که دیگه خطابه بنده بس آقای نو بود کنم. میتونید یه خودم خودتونی را کنید یه زرده که بله من ابن این باره دارم. بله. با ندارم میخونم چاگردی که درس آزار نکرده منم این شما خب درست پرنامهشم تعین نشد برای امباد بر. بر زرد پادشاه ازمین دخمان و افثانه گفتن دختر پادشاه ازمین دخمان چون گریبان کوح و دامن دشت از ترازوی صبح پرزر گشت روز یک شنبه آن چراغ جهان زیر زر شد چو افتاب نهان جام زر برگرفت چون جمشی تاج زر برنهاز چون خورشی بس چون زرد گل به رعنایی کهربا بر نگین سفرایی زرفشانان به زرد گنبت شد تا یکی در صد شد خرمی را در اونهاد بنا به نشات می و نوای قنا چون شب آمد نشب که هجله ناز پرده خلوت خلوتساز شه بدون شم شه بدون شم اشک گفت تا کند لعل با تبرزد جو خاص تا سازد از غناسازی، در چنون گنبدی خوش آبازی فرمان شه گزیر نبود عوض با ناز دلپذیر نبود گفت رومی عروس چینی ناز که خداوند روم و چین و تراز تو شدی زنده زندهدار جان ملوک عز نسرو خدایگان ملوک عز نسرو خدایگان ملوک هر که جذبندگی رای کند سر خود را سبیل پای کند چون دعا را گزارشی سره کرد دم خود را بخور مجمره کرد بسیار بعدش پستش نمونه مقدمه رو بگیم حواست اولا که توجه فرمایید که یه شنبه رو بهش میگن ساندی یعنی روز خوش از میون تمام روزهای هفته اینا معلومه کدوم به کدوم Monday یعنی روز ما Sunday یعنی روز فرشید Wednesday یعنی روز وینوز مثلا فرز بعد فقط در فرانسه یه خود تغییر کرده Saturday یعنی روز زحل Saturday یعنی زوحل مثلا در فرانسه روز یه شنبه رو گذاشتن دیماش یعنی روز خدا این شنبه رو از دوهل گرفتن تعبیر خورشید شد شده سمدی سمدی یعنی روز روز خورشید اموساندی ولی به هر حال این روزا همش معینه مثلا در فرانسه پنجشنبه از جدی. جدی یعنی روز مشتری روز مشتری هر کدوم از این هفت سیاره یکی از این روزای هفته متعلق به یک فلز متعلقه به روز یک شمبه، روز خورشیده فلز متعلقه به خورشید و متعلقه به روز شنبه هم ذره و همین دلیل هم در رساله های کیمیا کیمیاگری اینا برای اینکه آمه ناس نفهمند که اینا چی میگن یه سلسل رم. رمزه، نه چندان مشکل از روی، چیزای خیلی ساده ای ولی هیچوقت نمیگن زر و سی. میگه شمس و غمر شمس یعنی تلا به دلیل اینکه فلز باوسته به خرشیده قمر هم یعنی نغره و اینکه اونم باوسته است اینست که اینجا شما میبینید که با این زردی و با این زر و با خرشید و با یهشنبه و اینا خیلی بازی میکنه نظامی اینا تو کلتون باشه که اینا تناسب خیلی خیلی کاملی با همدیگه داره حالا ببینید که چیکار؟ میگه چون گریبان کوه و دامان دشت از ترازو بی پر پرزرگشت پول گفتم نقد میکردم صابق نسی که مفصل هر زدن در این باق سه کار شما دست می زدن نه هیارش معلوم بود نه وزنش. و شما که مفصلیم پول بگیرین، باید یه کسی رو که ناقد بهش میگفتن یا نقاط بهش گفتن، سر بود، زرگر بود. بیا دونه دونه اینا رو محک بزنه اولم این هایارش درست ها اگه میگه اینطلاعی نوده، نوده یا نه بعد بکشه تو ترازی توی این وزنش هم تا این عباخر، این لیره انگلزی مثلا اینا رو دیگه ماشین و میساخت و ایارش هم رسمی درست بود میگرفتن با سهون نرمه، لای زنجیرهاش رو سهون میزدن بزر رو ازش میتارشتن بعد یا رو که وقتی میکنم این بردن میگم این سهون خورد و چونه که میخواستن بزنن میگو مثلا این ست توان سه اونخور یعنی چیزی تحکیف نمیگه این حتی موقعی که با ماشین هم چیز میکردن این کار رو میکردن چه برستن اون وقتی که سکه به شکل داشته با قالب و با دست رو اینا بنابراین که میگه تو ترازو بعد از اینکه یا صدی میگه که هرکرها زر در ترازو دور بر باز. زر در ترازو دلیلش اینه آخرین مرحله ای که دیگه بلا فاصله پول و طرف نمی‌دادن، موقعی بود که تو ترازو. یعنی اول معهک شده بودن اون بی خودیار میگه خود اون بعد میگم رو قبول نمی‌کنم. اون قسمتی که قابل قبولش نمی‌ذاشین. بعد که آماده می‌شد یعنی همش عیارش معلوم شده بعد می‌کشید. می‌کشید، بعضی نما درست بود، میداد تعویض طرف. اینه یعنی که میگه که چون گریبان کوه و دامن از ترازوی صبح پر زرگشت پالی میکرد اون زر و در ضمن این معنی شوهای زرین آفتابان ها هست هست روز نورانی شد و زرین چون گریبان کوه و دامن دشت از ترازو صبح پر زرگشت روز یک شنبه آن چراق جهان زیر زر شد چه آفتاب نهان یعنی Thanos جام زر بر گرفت چون جمشید تاج زر بر نهاد چون خورشید. جمشید جم یعنی دو هنوزم در زاندار بیرجان بر خراسان بچ دو رو میگن جمال در کرمان میگن جمولو در فرانسه بهش میگن جیمل یا جیمو یعنی بچه دو اما دو قلو هم که ما بر قاعدهش سه قلو و چهار قلو هم ساختیم این اصلا کلمه اینجوری نیست اصلا ساختمونش این نیست یعنی دو جزء کلمه هست دو بالو، و دو قلو یعنی توأم میخواد سه تا باشه میخواد چهار تا باشه باشه هچ باشه باشه دغلو. یعنی یعنی بچه که با هم به دنیا و ما خیال کردیم که اولیش دوست بعد هم غلوه بعد سه, بعد سه قلوه، چهار قلو هم صافتیم دوغلو یعنی جمل یا جمل یا جملو یعنی بچه توأم طفل توأم و جمشید با یک خواهر گفتن به دنیا آمد و خواهرش این در اساطیر هند هست و خواهرش به دلیل اینکه مادرشون یک گناهی به درگاه خدایان مرتکب شده بود و یه بار قضای خدایان رو بینیم که به حضور اونها عرضه ارزه عرض بداره خودش خورده بود خدایان به او غضب کردن دخترش مرده بود دنیا پسر زن به دخترش مرد بعدی مادر ناراحت شد و توبه کرد و انابه کرد و گریه کرد و زاری کرد گفتن که تنها رای که اون تن این بچه دوم زنده بشه این است که جم جم یعنی پسره را قبول بکنه که بعد از مدتی زندگی کردن بمیره و بره پادشاه کشور مردگان بشه تا اون روز از مرده‌ای کسی نمی‌مرد و جمشید اول کسی است که مرد و بعد رفت پادشاه کشور ارواح کشور مردگان بعد در ودا شیدم نداره فقط جم یعنی جمع. برای اینکه شید به معنی تاپناک و روشن ما میگیم جم روشن اونها جم رو جم تاریک میگن تا پادشاه کشور ظلمات به هر حال جم یعنی بچه دوقلو شیدم یعنی تاپناک یعنی جم تاپناک اسم جم شید و در اوستا مرسیم در اهم در اوستا هست یه مخشایت هست که شده جمشید ولی در ودا فقط یمه هست یعنی شید ندارید بعد به ترتیب اقوام ایرانی وقتی اقوام اروپایی ایرانی از هندی جدا شدن ایرانی ها ای مرتبی بالا هندی های ها مرتبی جمشیده پایین پایینه مثل, مثل احورا و هم گایوه خدای هندیا سنو دپش میگنم در پاشو دی نا دای ورا از سخت خدای کشتن پایین اهورا رو بردن بالا شد، اورا مزدا شد خدا هندیا او انسوورا رو به قول خودتون از خدایی از کزن و دایو هنوز هم هنوزم در زبان های هند اروپایی خدا لغ الکس دیواین یعنی الهی خدایی دیوینیتی یعنی خدایی در فرانسه خدا رو میگن دیو، از همین دهه بست ولی در ایران دیو اهریمنه، شیطان، خدای بده همینطور هم جمشید که ما گفتیم جمع تاپناک و چیزای مختلف بهش نسبت دادیم اونجا درست و اکسی از چیزهایی هم که به جمشید نسبت دادن اینه که اول بار آداب میگساری و میخوردن و مجلس شراب نهادن و ساقیداری و این آداب و رسوم میگساری رو جمشید مقرر. اینه که میگه جام زر بر گرفت چون جمشید تاج زر بر نهاد چون خوش. جام ظاهرا هیمانه‌ای بوده که یا از فلز بوده. خانم‌ها ما بچه بودیم تو برنجی، زمانی از فرنج برنج مسافت بود. یا از فلز بوده، برنج، نقره، حالا حافظ میگه سرما است در قوای زرفشان، نه ببخشید. چی چی میگه با تاج خانغنو، اون جام زر حافظ شب انتظار باشه. صوفی گلی بچ نو مراقبه خار بخش این زهده ترق را به و می سار بخش آخرش میگه که پس که چیز کردید بود جام زر و حافظ شد زندگی. یکی او گویا از بلور و شیشه و نام جام رو می ساختن و قده نه قده ظاهران از گل بوده و سفال بوده و چینی بوده و نوع خاصی خاصه بوده داده. و جام پردش کنه برحال جام زر برگره تون جمجی تاج زر بر نهات تون خوشی پس چون زرد گل گفتم بارها که گل گل سرخ ولی همون نژاد گل سرخ میدونید که رنگای یه زر بنفش زرد سفید از همون خانواده همون روز، هست دیگه الانم معروف همون گل زردی که من یادم ما بچه بودیم یه درختش تو خونه بود عین گل سرخه پنج تا هم و گل زرد که حلوایی هم گوی ازش میپختن که وقتی که من بچه بودم فقط اسمی کنیدن وقت حلوه رو نگیدم ولی معروف بود که حلوه گل زرد هم میپذارم حال اش چیز نکنیم که میگه گل زرد زرد گل این گل به معنی خلاقایر امروزه خیل این همون گله یعنی همون نوع روزه منطقه رنگ زرد بس چون زرد گل رعنایی کهربا برمگین سفرایی سفرایی باز یعنی زرد رنگ اصفر یعنی زرد سفرا رو هم اون که زرداب بشین جنگ پاستیش. بهش میگم صفراب برای اینکه رنگش زرد کهربا هم زرد رنگ و حالا انظر تبدیل من نمیدونم که کهربا تأثیری هم معتقل که در سفرا داره نداره من نمیدونم ولی کهربا برای نگین سفرایی صفرائی یعنی زرد رنگ میشه چیز کرد هیچ به روی خودم نهی که سفرا اون معنی اون چیزم زرد فشانان به ضرد گمبت شد تا یکی خوشتلیش در سط شد. خور رمی را در او بنا و نشات می و نوای غنا بش. چون شب آمد نش که هجله ناز پرده عاشقان خلوتسا ها خ خب رفت خدمت شد بدان شم اشک گفت تا خونت لل با تبرزت جو شم از موم می صافتن قبلا ارز کردن به خصوص شم های خانواده های متعید و متشخص و پادشا و اینا رو از موم می صافتن. و موم از اصل جدا شد بنابراین شم اشک که میگه اشاره به اون اصل که جز امومه داره در عین حال مرادش از ششه که اون زن زیوااز که قرار خستوخن هم باشه که میگه لعلش رو با تبرزت جفت کنه لعلش مراد لبشه تبرزدم یعنی نبات تا مرات سخنشونریشم میشه که ازشان گفت که لعلش رو با تبرزت جفت کنه یعنی حرف افتا سازت از قناسازی در چنان گمبدی خوشاوازی یعنی محصولش اینه که به این ترتیب با حرف زدنش لط به صلاح کیفشار تک می کنه دیگه خوشاوازی کنه در اون گمبد چونزش بربان شهر وزیر نبود عوض با ناز دلپذیر نبود گفت رومی چینی ناز هم روم و همچین بلایت های حسینخیزی بودن قبلا گفتن رومی و چینی ها هر دوشون محروف بودن به زیبایی برای اینکه مسلمون نبودن و می رفتن از اینجاها دختر نهاجی که شوند اصیم کرد در این می بازار میفتن گفت رومی عروس چین ایناست که خداوند روم و چین و تراز ترازم هم یکی از شهرهای توسیتیز بوده فرقی سیستانی میگه که یاد بادان شب کان شمسه خوبان تراز، به طرف داشت مرا به گهت بانگه نماز من و او هر دو به حجره در و میمونه سمان باز کرده در شاید در حجره فراز گه به صحبت بر من با بر اون بستی اه گه به گوزه لب من با لب او گفتی راز من چون مظلومان از سلسله نوکروان اندر آفید کزم سلسله زرکه درام شمسه خوبان تراز تراز اسم چهر اوزم گفته خداونده روم و چین و تراز تو شدی زنددار جان ملوک یعنی جان همه پاتشان در اختیار توست و به لطف تو اینا رو زنده می‌گهدشتی از زن از روح به معنی یاری، از زن از روح یعنی یاری اون گرامونست جز عرقاب دعا و نام. از زن از روح خدایگان ملوک یعنی رئیس و بزرگتر همه‌ی پاتشان هر که جز بندگی ترای کند سر خود را سبیل پای کنه هرکی جزبندگی تو فکری بکنه سر خود زیر پای انداخته ای. چون دعا را گزارشی سره کرد گزارش به معنی پرجمه و تفسیر و توضیحه درست معادل کمانکر فرانسه یا کمیشی انگلیسی گزارش خود سرم یعنی خیلی عالی چون دعا را گزارشی سره کرد دم خود را بخور مجمره کرد یعنی شروع کرد با نفس خودش به عطف پاشد مراد اینی که بسر را بود بخور غلط هم یعنی ریپورت تازه است تازه بودشتم چرا الان الان به اومد ولی اصلا گزارش بیتارتن در پهلوی هست به معنی دانیه حضور قدس ما یه معنیه قدیمی که حالا هست که هست همتونم هم آشنایی می‌بیدین. او شهری از شهرهای عراق داشت شاهی از شهریاران تا آفتابی و عالم افروزی خوب چون نوبهار نوروزی از هنر هر چه در شما راयत و هنرمند را به کارایت داشت با آن همه هنرمندی دل نهاد از جهان به خورسندی خونده بود از حساب تالیخیش که از زنانش خصومت آید بیش زن نمیخواست از چنان خطری تا نبیند بلا و درد سری همچنان مدتی به تنهایی ساخت با یکتنی و یکتایی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 زنی از ابلهان ابلهگیر هر کنیزی که شه خریدی زود پیرزن در گذاب بی بی سود خوندی آن نو خریده را از ناز بانوی روم و نازنین تراز چون کنیز اون غرور بی, بی بیش باز ز رسم خدمت خیش ای بسا بلفزول یاران آورد کبر در پرستاران منجنیقی بود به زیور و زید خانه بیرون کنه عیال فرید شاه چندان که جهد بیش نمود یک کنیزک به جای خیش نبود هر کرا جامعی ز مهر بدوخ چون که بعد مهر بی باز برود که ساده از خیلی چیزی نداره فقط در بهیت چهم داشت با آن همه هنرمندی هر چه لازم بود داشت میگه که از هنر هر چه در شمارایت با هنرمند را به کارآت داشت. با آن همه هنرمندی دل نهاد از جهان به خورسنددی، خورسندی یعنی قناعت خورسنددی ی یعنی قنات میگه که تاال بینابش گفته بودن که از زنایت در سریاست این است که زن نمی حالا قالب بینش که سال همه م دیدن با فر من بابا بود. که خانده بود از حساب طالف چیزی که از زنانش خطومت آهد زن نمیخواست از چنان خطری این خواستن به معنی گاری کردن و زن گرفتن این خواستن به معنی که مثل حالایی که به کار میدیم زن نمیخواست یعنی زن نمیگره خواستار ازدواجه با زنی نمیشد مرادش این. توجه بکنید که این نمیخواست بیرسی زن نمیخواست از چنان خطری تا نبیند بلا و دردسر. همچنان مدتی به تنهایی صاف و یک تنی یک چاره آن که چارونا چاراش مهربانی بود با تزاوار شد. خب قرر من کنیزی بخریم. بالاخره یکی باید کاری می‌کنه رو بکنه، کنه جمع رو کنه، خدمت کنه، باید باشه و هی کنیزارو خرید. ولی دیدی که پیرزنی بود که پوری به کنیز می گفت: شاطر دوست تو خانومی تو فلانی زنک یابو برش میدونیم می که دوستی میگفتش که به هیچ نهوی آدم با کلفت خونه نباید تو نظر غیر از کار کلفتی برای اینکه کلفت کاره خانوم میشه فوری و از و دعوی خانومی داره این است که بهتر کلفت همون خدمت خود بکنه اگرم قرار شد که یه کسی یه بانویی به هر حال به هر ترتیبی روابطی با آها داشته بشه او به کار خدمت تو خونه نپردزه اینکه این دو تا با هم جور در نمیاد همین جور سکرتار آدم سکرتاری که اگه بخواد آدم نظر غیر سکرتاری نسبت بهش داشته باشه اون دیگه از چیز سکرتاری میره بیرون یه چیز دیگه میشه کلی خوب نیست این است که میگه که بسیار کنیز خرید ولی هیچ کدومش سزای خدمت خودش ندید چرا هر یکی تا به هفته یکم و بیش، پای بیرون نهادی، آه خدمتگار بود، ذر خرید بود تا شب گفتش که باری کلام مثل ما الله خانم خوشگرد یا دست استراز می‌چونید، روش بالا یا. به خصوص که اون اونجا بود یکی که اینا رو شاید به صلاح خودش یکی کی اینا رو رد می‌کرده هر یکی تا به هفته یکم و بیش پای بیرون نهادی از حد خیش سر بر افراختی به خاتونی خاصی گنجای های دلیلش او در خانه گوش پشتی زنی از ابلهان ابلهگیر هم ابله بود هم ابلهگیر بود یعنی تر میکرد مردمون خودشم ابله بود که این راه درست نبود یعنی زن میرفت یعنی خود این کارم با همه اینکه که خیال میکرد که خب به این ترتیب حالا این خانومو هندونه گوزی زیر وقلی شد بعد این خانم چونو که به بخان... خانوم شدن بعد شاب نیرونش میکرد این بمونه ولی این راه درست نبود که خودشم قلط میکاره اینی که میگه که هر کنیزی که شه خریدی زود پیرزن در گزاف دیدیستون گزاف به منی مباله کردن و حرف زیادی زد زیاده از حد کسی حرف دادنه اما در معامله هم این که میگه ستیدی در معامله معامله چکی رو میگن جزاف معامله جزاف که به همین صورت در عربی هم رسه شده جزاف اینه که مثلا میگونی این هندونه ها رو چند یا این مثلا دو خون چکی چند مثلا میز و فندلی رو من این چند این ممکنه بعضی از کسانی که چنین معامله ای کنن بسیرت داشته باشند و درست بتونن حد زن و قیمت باورش. ولی اغلب این معامله است که از طرف این اثرش سرش ناراضی اینه که در کتاب تجارت هم در فقر اصرار شده که کمتر چکی معامله کنید چکی معامله نکنید این گزاف که میگه معنی معامل چکیران داره و همین یعنی میگه در گزاف ستود کنیزی که شهر خریدی زود پیرزن در گزاف دیدی ستود خاند یا نو خریده را از ناز با نوع روم و نازنین طراز چون کنیزان قرور غرور معنی فرید اصلا قرورم یعنی فلم قررمشو بدان که جهانت عزیز کرد ای بس عزیز را که جهان کرد زود معنی و قرور دادن این یعنی فرقی که مغرورم یعنی خودپسنده یعنی بیش از حد به خودش اعتقاد داره و اون غلطه آدم بهتر از هر کسی دیگه باید ایوای خودش رو بدونه. اگه نبینه فریب ترین آدم روزگاره. شما ممکنه ایوا من از آقای نوح و از دوستان پنهان کنم ولی خودم که میدونم اگه از خودمم فهان شوم خیلی در دارم. یعنی که میگن معلومه. چون چنین زن غرور دیدی بیش بازموندی در اسم خدمت تخیلی. ای بس آب بلفزول که زیاران آبرد کبر در پرست داران فزول اصلا فضل یعنی برتدی فزول یعنی زیادی است آدمی هم که میگن فزوله یعنی زیادتر از اون اندازه ای که قرار حرف بزنه حرف بزنه یکتون هم میگه آه حقوق چم میگیری عباوتتون با خانوم چطوره؟ چه فهمش؟ اینا فوزولیه دی یعنی زیاده تلدی و بلفزول یعنی آدمی که حرف زیادی میزنی ای بس آب بلفزول که از یاران از آدم های تو خونه موجب میشه که اون خدمتدار روش بره بالا خودپسند بشه ای بس آب بلفزول که یاران آغرت که در پرستاران حالا میگه این این فضولی این آدم مثل منجنیق خوشگلی است. خیلی آراسته و قشنگ و و این به این ترتیب اون رو میذاره تو این منجنیق که ظاهرش هم خیلی آراسته و میگه به بچه خانمی هستی تو همین چون کسی به صورت عادی دیدن سر استرشاست ولی حاصل منجنیق چیه بردش میگن طرف منجنیق بیوبت به زیبر و زیب خانه ویران کن عیال پس منجنیق کلمه یونانی از همین کلمه است علم مکانیک چندان که جه بیش نمود یک کنیزک به جای خوش نبود این به جای خوش نبود یعنی سر جای خودش با نمیشه از حدش پاهم که جامعه ایزه مهر بدو، چون که بد مهر باز برو این هفته میخرید یعنی که پیرزن خار میذاشتی دومش رو از نه به در میکرد دو هفته بعد بیلوت شهر زبست که از کنیزکان شد دور به کنیزک فروش شد مشهور از برون هر کسی حسابی ساخت کس درون حساب را نشنا شخص بس جستجوی تافته شد بی مرادی که بازیافته شد نز بی تالعی به زن دا نکنیزی چنون که باید یافت دست از آلود دامنان می شود پاک دامن جمیلهی تا یکی روز مرد برد فروش برده خرشاه را رساند به بگود کامدست از نگار خانه چین ای با هزار هورالعین دست ناکرده چند گونه کنیز خلخی دارد و خطایی نید. هر یک از چهره عالم افروزی مهرسازی و مهربان در میانه کنیزکی چو پری برده نور از ستاره سهری سفته گوشی چو در ناسفته دور فروشش به ها جان گفته لب چو مرجان ولیک لولو لو بند تلخ پاسخ ولیک شیرین خند چون شکر ریز خنده بکشاید خاک تا سالها شکر خواید گرچه خانش نواله شکر است خلق را زو نواله جگر است من که این شغل را پذیره شدم زن و خود زلف و خال خیره شدم خیره شدم گر تو نیزان جمال و دل بنگری فارغم که بپسندی شاه فرمود کابرت نخواست بردگان را به شاه بردشناس رب آورد و شاه در همه دید با فروشنده کرد گفت و شنید گرچه هر یک به چهره ماهی بود آن که نخواست گفت شاهی بود زان گوینده گفته بود خبر خوبتر بود در پسند نظر با فروشنده گفت شاه بگوی که کنیزک چگونه دارد خوی گر به دو رقبتی کند رایم آنچ خواهی به هاوی افضایم چین گشاده کرد زبان خاجه چین گشاده کرد زبان گفت که نوش بخش شهد لبان جز یکی خوی زشت و ننکوست آرزو را ندارد دوست هرچه باید دلبری و جمال همه دارد چنان که بینی ها هر که از من خرد به صد نازش بامدادان به من دهد بازش کابرد وقت آرزو خواهی آرزو خواه را به جانکاهی وان که با او مکاس پیش کند زود قست حلاک خیش کند بدپسند آمده است خوی کنیز. تو شنیدم که پسند بینید او چنین و تو چنان. بگذار سازگاری کجا بود در کار از من او را خریده گیر به ناز داده گیرش که دیگرانم باز به که از بیع او بداری دست آن دیگران که لایق هست هر که طبعت بدو شود خوشنود بیبه ها در حرم فرستش زود شاه در هر که دید از آن پریان نامدش رغبتی چون مشتریان جز پریچهره آن کنیز نخوست در دلش هیچ نقش مهر نروز، ماند حیران در آن که چون سازد نرد با خامده است چون بازد نه دلش میشد از کنیزک سیر نز عیبش همی خریب دلیر عاقبت عشق سرگرایی کرد خاک در چشم کت خدایی کرد سیم در پای سیم سیم در پای سیم ساخت کچید گمبد سیم را به سیم خرید در یک آرزو به خود دربست کشت ماری و از اجتهایی رست وان پری رخ به زیر پرده شاه خدمت اهل فرده داشت نگاه بسیار عرض کنم که اگر اگه اتونوشه داستان گنوه سیام اون خانم اونم هم دوره میگه اون یکی آرزو رو هرچه میخواهی از منت کام است جز یکی آرزو که آن خواهم است هم میگه در یک آرزو خود در بند همه ساله خور رمی میخند و شاه سیافوش در آرزو رو نبست روش رو زیاد کرد تا وست یه دید, دید حالا این هم همونجوره، این کنیز اشکالش این است که موقع آرزو خواهی که میشه راه نمیده و خب بالاخره این زن زیبا و ناب میگیره کسی میخره بندره میاره میخواد که ازش کام بگیره دیگه میخواد که زندگی بکنه باشه خب نمیشه که اینه که فردا مندن میارن که این بداخلاق خلصه دیگرد در نمیخوره دردم بردن و پسیش این ترس کنم که میگه که شاهد بسکی که کنیز بروخته بود معروف شد به کنیزک و کسی نمیدونست که اصل مدب بکشی از یه جست بس جستجوی تافته شد این مرادی که بازیافته شد نزد بیتالعی به زن بشه تا دلیل اینکه معتقد بود که زن یعنی ازدواج زنی که بگیره از خواه در سرش میشه نه کنیزی کنیزه به درکوری پیده کرد دست از آلود دامنان میشست پاک دامن جنگلهی میجست تا ایکی روز مرد برد فروش برد خرشاه را رساند گوش تا آمدست از نگار خامه چین خاجهی با هزار خوردی دست ناکرده چند کنیز خلوخی دارد و خطایی نیست و خطام از شهرهای غوث هر یک از چهره آلم هفروزی مهرسازی و مهربانسوزی ما میونه اینا در میانه کنیزکی پروفری برد مرده نور استاطی سر یکی میونه اینا دیگه خیلی زیبا سفت گوش و این نقاشونه و نقاشی رو سعی میکنم در نهایت زیبایی باشه دیگه نگارخانه چین نقاشونه عدلی و میدونید که میاتور از چین اومده است بنابراین نگارخانه چین که میگن یعنی اونجایی که هرچی عکس زن هست خوشگل در این صورت اینا بودن که مثل نگار خانه چید نگارکنست نقاش بعد نگارم که میگن زن خوشگل به همینکنست. توختگوشی چ دور گوش میکنه میزن. توختهگووش چ دور نخته دورحقوشش با جان گفته لب چون جان بل کل و من تق با توخت ولیشیی میخند چون شکر ریگز خنده با شاید حک تا سال شکر خواهد. گر شکر گرچه خانش نوبلش شکر است خ را اون نوبله جگر است با این همه زیبایی و. خوشخندگی و ارز کنم که دلبری و دلفروزی ولی مردم از او ترخ کام من که این شغل را پذیره شدم سان رو خوزولت و حال خیله شد این دارم که اگه به تو هم بگن تو هم او رو حتما نیپسندی گفت بیارن شاه دستیل راست که بیارن نخخاص یعنی بردت شاه فرمود را بردت نخخاص بردگان را به شاه بردش رفت و آورد و شاه در همه دید. این استعمال تازه ایست برای شما دیدن در یه دفعه دیگه هم بازه. در چیزی بود درخط نگاه کرد رفت و آورد و در همه دید یه یکی رو به درخط ماهی نکرد با فروشنده کرد گفت شنید گرچه هر یک به چهره ماهی بود آن که نخواست گفت شاهد. زان چه گوینده گفته بود خبر خوبتر بود در پسند نظر میدون که بعضیا شنیدنشون به از دیدنشونه بعضیا دیدنشون به از شنیدنشونه میگه که حافظ میگه که گفتن خلاقیفت که تویی صحفه سانی چون نیک به دیدم به حقیقت به هزام یعنی دیدارت از گفتار از اون چه میشنوی بهتر خیلی بعضی به عکس یه ضرب المثلی هست عربی در مورد شخصی به نام معایدی میگه انتست معایدی خیرون من انتر این که درباره باره معایدی بشنوی بهتر است از اینکه خودت خود یه دفعه گفتم که یه سر کلاس یا سر کلاس دانشگاه سر کلاس دانشگاه سر کلاس این انتصمه اول معایدی خیرون من انتراه رو ایرج در یک قطعه آورده میگه وزرا از چه دیده می نشوند؟ بزرها از چه دیده می نشوند؟ راستی مردمان دیدنی هست نی قلط گفتن این معایدی ها دیدنی نه همان شنیدنی هست چه و چه و چه بعد آخرش خیلی ببخشین جسارته میگه وزرا حکم زرته را دارند که شنیده شوند و دیده نیم <تصفيق> <تصفيق> آ، ارز کنم که میگه که این،, این خانومو بعد این که دیدن دیدن که نه دیدارش از اون چه میده بود بهتره زن چه گوینده گفته بود خبر خوبتر بود در پسنده نزد ولی خب زیبایی خالی که فایدنده گفت که اخلاق این زن پرسی که این خانوم بعضش چه چشیده شاخت با فروشنده گفت شاه بگوی که کنجک چگونه دارد خوی در دو دور کند رایم آنچه خواهی باها افزیت میگه اگه من کنی بخرم بعد از گونهن اخلاقش هرچی قیمت بگیم میده خااج چین گشاده کرد زبان گفت که نوش نوش بخششهید لبان جز یکی خوی زشت. وان نکووس وان نکووس کار زوخاه را ندارد چرا نمیشه هر چه باید دلبری و جمال همه دارد چنان که بینی حال هر کی از من خرد به صد نازش بام دادن به من داد باست میگه تو هم فکر کن که خریدی نو بردی فرد صحب پس پسا بردی حالا فرد سوبه بره این خانم چیز نیست بعد میگه که کاورات وقت آرزوخاهی آرزوخاه را به جان کاهی وان که با او مکاس دیش کند، مکاس یعنی چونه زدن و اصرار ورزیدن در به خصوص معامله تونه میزنن مکاس وان که با او مکاس دیش کند، زود قصد حلاک خیش کند اگر صاحبش زیادی به خواهد اصرار کنه، پوری میره که خودش بکشه خودش سرمایه باطل میشید دیگه قیمت طبی میره دیگه, دیگه. پسند آمد از خوی کنیز تو شنیدم که بدگفت هم این خانم بدپسنده هم آقا بدپسندی دوتا بدپسند و ولش کن دیگه این چیزه تو شنیدم که بدپسندی نیست اون چنین و تا آنچنان بگذار سازگاری تجا بودد کار از من اون را خریده گیر به ناز. داده گیرش تو دیگرانم با بب هلو خون این همه چیز شد یه ذره استراحت کنین وانی ساعتم نوه بعد ارز کنم که یه چند بیدش هست اینجا که میگه که بهتره که چیز بکنی هر که میگه که فاید کن که اینو پست دید اومدی خریدی میبعدم پست دید به من هر که ات به دو شود خوش نبود در هم فرستش میگه شاه هر کدوم از نردید رو جز پری چهره آمکنیزه نخست در دلش هیچ نقچه مهر نرو ماند حیران در آن که چون سازد نرد با خام دست, خام دست یعنی ناشد و یه جای دیگه در خسروشینین هم نظامی میگه که نرد از خامدستان کم توان بود یعنی از آدم ناشی آدم نرد رو نمی کنه ایران ماند حیران در آن که چون سازد نرد با خام دست چون بازد نه دلش میشد از کنیزک سیر نه زعی بش هم میخرید دلیر آقابت خوش اومد از اوش جهنم اون یا آرزو رو درش به خودم میبندم آقابت عشق سرگرایی کرد خاک در چشم کت خدایی کرد کت خدا یعنی صحاب خونه گفتم که کت و کده یعنی اتاقه اتاق رو میگفتن قبلا خونه که همین حالا میگن آبدار خونه و مهمون خونه و صندوق خونه و... یعنی اتاق دوش صندوق میزرن اتاق آشپس خونه و یعنی اتاقی توش آشپزیم کنند، خانه منی اتاق و آدم که معمولا خانواده با هم زندگی میکردن تا وقتی پسر یا دختری میخواستن ازدواج وقتی پسر میخواست زن بگیره که دیگه نمیچن زنشو برداره بیره خاطی بچه ها و و بابا شد اینا که بعد یه اتاق دیگه دو اختصاص میدادن بعد میدهتن تدخدا شد یعنی صاحب یه اتاق خانو هم میگفتن کت یه اتاق شد تا بعد خودشون اونجا بچه‌بیدکنن اون بازی تکرار. که خدائی یعنی خونه داشتن و زند داشتن و زندگی داشتن میگه خاک در چشمی که خدایی کرد. با اینکه این کنیز به درد اون کار نمیخورد و میگفت از اول ولی خب زیباییش باعث شد گفت من این این یه این یه خواهش رو از اون صرف نظر میکنه. سیم در پای سیم ساخت کشید، گنبد سیم را به سیم خرید. در یک آرزو به خود در پشت ماری و زجدهایی راست اون یه آرزو رو دورش غلم و, و خرید حالا آقای روح وان پری رخ زیر پرده شاه بان پریرخ به زیر پرده شاه خدمت اهل پرده داشت نگاه بود چون غنچه مهربان در پوز آشکارا ستیز و پنهان جز در خفت و خیز هیچ خدمت رها نکرد از در خانیداری و اعتماد سرای یک یک آورد اعتماد سرای یک یک آورد مشفقانه به جای گرچه شاهش چو سرب بالا داد، او چو سایه به زیر پای افتاد آمدان پیرزن به دم دادن خامه خام را به خم دادن بانگ برزد بران عجوزه خام کس کنیزیش نگذراند نا شاه از آن احتراز کومی غور دیگر کنیزکان بشنا پیرزن راز خانه بیرون کرد با فوسونگر نگر چه کرد تا چنان شد به چشم شاه عزیز که شد از دوستی غلام کنی گرچه زن ترک دید عیاری همچنان کرد خیشتنداری تا فرصت فرصتان چنان افتاد کاتشی در دو مهربان افتاد پای شهر در کنار آن دلبند در خزیده میان خز و پرن قلعه آن در آب کرده حساب واتش منجنیغ این برکا، شاه چون گرم گشت از آتش تیز گفت با اون گل گلابنگیز کی تبدانه ی رسیده من دیده جان و جان و دیده من سرو باغام سرو باغامتت گیا فشی تشتمه با تو آفتاب بکشی از تو یک نقطه می کنم درخواست کنچه پرسم مرا به راز. راست گر بود پاسخ تو راست ایار راست گردد مرا چقدر تو کار گنگه از بحر این دلنگیزی کرد با تازگل شکر ریزی گفت وقتی چو زهره در تستی تو زهره در تستیست با سلیمان نشسته بود بلغیس بودشان از جهان یکی فرزند دست و پایش گشاده از پیوند گفت بلغیس که رسول خدای من و تو تندرست سر تا پای چیست فرزند ما چنین رنجون دست و پایی رستی دور درد او را دوا شناختنیست چون شناسی علاج ساختنیست چون شناسی علاج ساختنیست جبریلت شاورت پیغام این حکایت به دو بگوی تمام تا چو از حضرت تو گردد باز لوح محفوظ را به جوید راز چاره کو علاج را شاید به تون ساز بنماید مگر این طفل رستگار شود به سلامت امیدوار شود شد سلیمان بدون سخن خوشنود روزکی چند منتظر می بود چون که جبریل گشت هم نفسش باز گفتان چه بود در هوسش رفت جبریل و آورید دروز از که از کردگار چرخ کبود گفت این را دوا دو چیز آمد، واندوان در جهان عزیز آمد. آن که چون پیش تو نشیند جو، هر دو را راستی به باید گفت. اون دان، که آن اون حکایت راست، رنج این بر بردواند خواست. خاند بلغیس را سلیمان زود، گفته جبریل باز گشت بلغیس از این سخن شادان که از خلف خانه می که از خلف، خانه می آبادان گفت برگوی تا چه خواهی راست تا بگویم چنان که عهد خداست باز پرسیدشان چراغ وجود که جمال تو دیده را مقصود هرگزم در جهان زروی هوس جز به من رقبت تو بود بکست گفت بلغیس چشم بز تو دور زن روشنتری روشند چشمه نو جز جوانی و خوبی افکین هست بر همه پایگه تو دارید است خوی خوش Broeie goos.